بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اشاره كرديم به ايات عدله صريشه که در بحث قدرت اومده گفتيم که مسائل حدیثي و مسائل عقلي که در اين اشاره ميشه در زمن قدرت انسان موكل مي‌بينيم در جلسه ايات كم روزا رفيض ما ان شاء الله سایی می کنیم اون عدلهی که اومده و سریح هست درباب فطرت به ششاره بکنیم. و اگر شبهاتی هم هست پاسخ بشت بدیم و عدله عقلی هم بگیم. حالا نمیدونم این فرسات بحث فطرت چقدر طول بکشه. الله اعلم بیکن اون چونه که من می بینم شاید مبحث خیلی شاید کشیدی بشه، طولانی بشه چون ما سوال عقلی زیاده در فلسفه میشه بحث قضا و قدر و بحث نمی‌دونم در ازل و بحث قدریه و اشعاری و ما بحث زیاده در بر می‌گیریم بحث فطرت که ما فکر نکنیم که من فکر خودم شخصا فکر نکنم که بتونم در این مرحله که ما فطرت را گرفتیم یکی از علائم و یکی از دلایل وجود الله در اینجا بخوام جای بکنیم و جا بهش بدیم. هرچنگ که جا داره. چون بحثت رد شده مایین شاقی و کاپی جوابش رو بدیم, بدیم و باشرات برطرف رو بیم. ببینیم دیکن الان ببینیم بررسیر بکنیم تحلیل بکنیم چه مباحثی رو باید مکن بشه به بحث حضاب و خدر و چه مباحثی باید اینجا پاسف داده بشه که انشالله توفیق از خدا میخوام و تعانات از ایشان. من باب استدلاله كده السنه الصحيحه اومده اولا ادلهه اللي في صحيح البخاري اومده سريختين وصحيحتين دليل دليل حديث البخاري ده كما بيقول قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعى تحسنون فيها من جدعان حديث ضرب فرید مسلم است پس ابو الله الذي فطر الناس عليها لا تهدي الى الله ذلك القيم ذلك الدين القيم الله الله علیه و سلم این هر شخصی که به دنیا میاد در ذات خودش فطرتی داره سپس پدر و مادرش به ابواب یهودانه برو یهودی میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی چرا گفت چرا نگفت مسیحی چرا گفت نصرانی آیا درسته به این نصرانی ها بگیم مسیحی لغت درو چون مسیحی درستی چرا چون اگر بگیم مسیحی یعنی تاییدشون کردیم که اینا تابع عیسی مسیحن اینا تابع عیسی مسیح نیستن باید بهشون بگیم نصرانی میگه همون که حیوان چارپا فهیمه تند توجه یعنی تولد میکنه و به دنیا میاره جمعا حیوان چارپایی که سالمه از دهاز بدنی و جسمی حل تو حسونه فی همین جده آیا در میان فرزندان اون دو تا حیوانی که سالمه خیوانی میبینید که از اون چیزایی که به دنیا آمده میبینید گوش بریده و بینی بریده و نمیده چش بریده باشه؟ نیست. ذات خودش که یک خیوانی به دنیا بیاد گوش بریده باشه ندارید. شاید نقص خلقتی داشته باشه. ولی بریدیگی درش نیست. بینیش بریده باشه نیست. خوش بریده باشه نیست. فطرتی هست، طالمه. همونطور که در حیمان وقتی که به دنیا میاد از این حیمان سالم خودش سالمه، ای فردندش سالمه فطرت انسان هم همینجور فطرت انسان سالمه کی عبدش میکنه؟ خلق خدا؟ بندگان عبدش میکنه ها میگن این حدیث نسبت دادنش به رسول الله قسمت دومش یعنی افا با و ها و موضوعه این در از مدرجه از قول ابو حرره هست و ابو حرره هم بد فهمیده و بدم نفت کرده. همانطور که غره رو بد فهمیده. که میاد تا آرنجش گوزو میگره. خاطم اولا ابو اگر چخص قیل از ابو بود شاید معذرتون قبول میکردید. ولی ابو حرره به خب و اونجا هم اون چیزی که از رسول الله شنیده بود نقل بود. اون قسمت از فعلش و اشتهادشه. فعلش تا آرنج تا, تا شانش می شود. دیکن در قول. هر کم زیاد کرد. خیر اینجا چه دلیلی هست بر اینکه که ابو بد فهمیده و این قسمت را از جیب خودش گذاشته. هیچ از علما قاطعتا دومن هیچ یک از علما قاطعتا نگفتن که این در این حدیث مدرجی خاطر شده که ما بگیم این مدرج نسبتش به رسول الله موضوعه هیچ یک از علما مانادی که بیاد این چه تهمتی را به حضوری وارد بکنه نه وقت هیچ یک از علما هم این چه تهمتی بد فهمی را به حضوری وارد نکردن که شما الان دوومی شدید حتی معتزله حتی اشعری ابو هرث احمد معروفی بوده. لیکن جرئ کہ شما میکنید ابو ہریرہ نیاز متراکتہ ابو ہریرہ شاید در اجتهاد یک عمل استنتاج بکنه شاید مش... شاید بگیم فرض یک اجتهاد خاص خودش داشته باشه ما باهاش موافق نباشیم لیکن در نقلش هیچ یک از علمای اهل سنت اختلافی ندارن که ابو ہریرہ اون که شنیده هست نقل میکنه بدون کم و زیاد اونا به خاطر دعای رسول الله که دعا کردن هیچ فراموش نکنن و خودشان میگید من هیچ چیز فراموش نکردم چارومن شما مشکل با ابو هره رو دارید چون با عقلتون جور در نایی مده. مشکلشون با ابو هره رو هست. خب اگر ما براتون همین حدید با همین معنا از صحابی دیگر رو بردیم چی میگید؟ یک شخص بگیم حالا شاید یک مشکلی تعارضی پیش من راویان ازش برد فهمیدن. بری به صحابی ایچه خطه هم نبید. شاید راویان برد فهمیدن. هنا قد يدريك روايات باشا اديك صحابي قد يحامل روايات باشا مثلا مدرين رواية فادي الأسود ابن سريع عن الأسود ابن سريع رضي الله عنه سريعنا سريع عن الأسود ابن سريع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئت خياركم أولاد المشركين ما من مولود إلا يولد على فطرة الإسلام حتى يعرب عنه لسانه و یو نصرانه و یو اونجا ابو حرره بردفهم بیدی بود و از جیب خودش گذاشته بود بگی ما. خب اینجا چی میگید؟ همون لبز همون لبز و یو نصرانه و یو مجسانه و یو نصرانه همون لفظ بازم اینجا داریم خب الان چی میگید؟ این روایتم در نظر ابن حبان و سبرانی در سقیره اوسط و اسناد صحيح اما دي كه اسنادي هيچ غواري درش ابن حجارو غيرو غيرو ابن حبانو ساده دي زوجت علما تفيش كردن و كدي هم عيب از اين اسناد د نيورده خب حالا چی ميگيد حالا ما روايت هاي ضعیف هم داريم حالا از خود جابر بن عبدالله در نزد احمد طريقي من نيوردم نگفتن يكي چيزي كه مثلا اين روايت چون کامل خوندم، این قسمت رو فقط بهتون شرف بدم. اولیس خیارو کم اولاد المشرکی. شاید تو زندتون بیاد. آیا بهترین شما فرزندان مشرکی نیستن؟ یعنی فرزندان مشرکی، آیا بهترین شما؟ یعنی بهترین شما از اطحابی که جلوه من هستید؟ بهترین شما؟ کسانی نیستن که فرزند مشرکی بودن؟ ابو بکر. ابو بکر و فدارش مسلمان شد عمر و عثمان اینا فرزندان مشرکین بودن یا نبودن درست صحابه او الیس خيار تو اولاد مشرکین ایو بهترینین شما کسانی نیستن که روز بهترینین شما کسانی نیست که فرزندان مشرکین بودن جهت لغت حساب نمیده که بعضی ها ادعا دارن که اگر لغت عربی بلد باشی هرطوری خاصی از حدیث بتونی استنباط و استنتاج بکنی نمیشه. باید بر باید برگردید به شروحات عامه. باید حدیث رو کنار هم بذارید. باید فهم علما، فهم صحابه نگاه بکنید. نه اینکه فهم خود مستقلاً. از فهم خود مستقلاً استنتاج بکنید و بیاین دیگه بره. فرزندان مشرکین از صحابه هم بهتره. این نمیشه. این حدیث داره خودش مفهمومی داره، واقعی داره که باید دونوا خبر بدید. از جمله احادیث احادیث احادیثی که در ضمن میثاق بوده در دار شرح اون آیه و ایت من بنی اده من ظهورهم ذریاتهم واشهدهم على انفسه در ضمن همون كما ما اگر برمیگردیم به کتاب‌های تفسیر می‌بینیم که در ضمن اون احادیث در ضمن میثاق وارد شده از روی حدیث انس ابن مالک نز امام مسلم همین احمد ابن حنبل من می کنم از ضمن امام احمد عن انس ابن الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه ارئیت لو كان لك ما على الارض من شيء كنت مفتدییم به میگی در روز قیامت یک شخص اهل جهنم گفته میشه آیا اگر به اندازه دنیا ملک داشته باشی اون چیزی که در روی دنیا هست در زمین هست مال خودت باشه آیا به خاطر که از جهنم نجات پیدا بکنی فرداش میکننی صدقه میدی حالا فاقول و نه میگوید آلی فقول خ ار تو من که اهوارم این من کمفر از این از تو خواستم نخواستم که هرچی داری نفقه بده و این پااق بکن قد أردت منك أهول من ذلك كم تراثون هذه الخاصة؟ قد أخذت عليك لا أقول قد أخذت عليك في ظهر آدم قد أخذت عليك في ظهر آدم عندما كنت في الكاميرا آدم كنت؟ هذا التعهد غرفت أن لا تشرك بي شيئا كبراي من شريك قائلنا شيركنا ياري يعني شيء؟ يعني فقط منو به پرستید صعبيت الا ان تشرك بي نخصي ماجر انك مشرک بشی خودت نخصي به زور برخلاف ميل و فطرت برخلاف آن چیزی که من در در نهادت و در درونت گذاشتم از جمله احادیث حدیث که خداوند يا رسول الله عليه و اشاره میکنه برای اینکه انسان در توجيه خلقت شده بر شناخت توحید حدیث عیاض بن حمار المجاشدی رضي الله عنه عیاض بن حمار بياتي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال ذات يوم في خطبته في الخطبه شنو ييفرمى كل مال نحلته عبدا حلال حرمه الله وعند ميجي كي الا ير... اني رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو ييفرمى في خطبش ala inna rabbi amaranī an uʿallimakum mā jahiltum khodavan badan tarya parvardigar be man dastur dadan ke on chizi ke yad dade shodam be shoma yad bedam az on chizay ke nemidunid mimma ʿallamanī yawm hādhā al'an chika al'an be man yad dade kullu mā 'allamtu ʿabdan halāl khodavan mige har chizi ke az mal-e donya be bandam dadam halal esh bashe wa inni khalaqtu ʿibādī hunafā'a kulluhum واني خلقت عبادي واني قد ربنا يفرميا واني خلقت عبادي صنفا كولا هما بندغانم را حنيف مائل عن الشرك موحد موحد خداشناس خلقتهم وانهم اتتهم الشياطين فجالتهم عن دينهم کسانی اونارو گمراه کردن که شیاطین بودن اونها رو ساختن وحرمت علیهم ما حللت و وحر وحر ما احللت لهم فان و برانش برانم بر شما یا بر آنها حرام کردن اون چیزی که حلال ساختم و امرتهم ان یشرکوا بی ملم انزل بی تلقانا فدبیشون دستود به ان من شرک بیارن هر چیزی هیچ دلیل و مدرک واسش نگرد باشه یعنی که عقلشون هم به کار ندادن، فطرتشون هم نگا نه که به این مسئله پی ببرن. پس گمراه سازی باید صورت بگیره که انسان از فطرتش خارج بشه. اگر نه فطرت پاک و انسان خداشناس است. این حدیث در صحیح مسلم در صحیح مسلم حدیث یا يا رب الرحمان هن بن بحث عقلي عدليه عقلي شنو اولا هر انسانی اگر ما در نظر بگیری هر انسان به طبیعت حالش از مسلمان کافرش ما الان بحث مسلمان رو نمی‌کنم بحث عموما مردما رو می‌کنی اگر یک یعنی اختیار بهش بدید در دو تا مسئله یک مسئله خوبی یک مسئله بده آیا انسان عاقلی انسان عاقلی میان بدا انتخاب ببنید بنوان مثال دیوونه هم شامل میشه حتی انسان دیوونه هم شامل میشه مجرور بیاری به اون بیرد انجیده حالا اکرام کنم الله این برسید این مسال رو میدنم فقط این مسال رو میدنم برای اونهایی که نمیخوان بفهمن مدهور بیارید بر یک دیونه و یک غذای قشن مثلا موسوسی از میوه های دنیا بهش بدید کدو بیگه انتخاب میکنه شکی دارید از از این میوه انتخاب میکنه شکی ندارید هیچ دیونه نیست که ادرال بوده میشه یا مدهور بکنه نجاست بکنه این طبیعت حال انسانه نیت. اینو میخوام بگم در, در, در نفس انسان انسانیت انسان الان هرچنکه عقل نداشته باش نداشت باشه شروع داشته باشه یه قوت غریبیتی ارادت دلونی هست که خیرخواهه دنبال مسلحتشه اون دیمونه نمیاد خار بخوره همین آهم بخوره دنبال غذا گروسه دنبال غذاست آبه دیمونه هم هستا ولی مسلحت خودشون میشناسه خواهیم مسلحت دنیاویی چطور که نمیتونه تشخیص در مسلحت و آخره بیشه. فردا روز قیامتی هست. فردا کجا بیخواد بره. یعنی این قد نمیتونه فکر بزنه انسان آقل. دوباره. هر انسانی ما در دنیا میخوام نگاش بکنیم. میبینیم که هر کدوم از ماها دنبال مصالح خاص خودشه. محبت منفعت شخصی خودش داره. میخواد به خودش نفعی برسلیم. ما همه من دوال منافع اخشخصی خودمون. میخواهم بخوابیم چون طاقتش نداریم فرمون درد میکنه. میخواهم بخوابیم چون گروس داری رو داریم رو تحمل نداریم. حب غذا رو داریم، حب خوابیده دار رو داریم، حب فنان و فنان و فنان و همسر رو فنان داریم. هر انسانی حتی یک طفل کوچهی که به دنیا میاده. اصل بر اینه که این طفل دنبال شیر مادر باشه شیر مادر بینیشه یا این که سروم بهش بست بش باشه اصل چیه؟ اصل بر اینه که اون طفل حب مکیدن شیر رو داره اول که بسانی ها میان میمکی آب هم بهش برید میمکه تا یک سالش ها لیوان بذارید اول زبانشو بیرون میاره میخواد بلیسه میخواد بمکه اون آب رو بمکه نمیتونه تجربه بکنید این این قدرت رو خداوند درش گذاشته. این اراده رو خداوند درش گذاشته. پس ایک اراده هست. شما نمیتونید این اراده ها رو منفی واقع بدید. یعنی منفی بکنید کلن این اراده هایی که خداوند این حب ذاتی، حب فردی که خداوند در ذات انسان گذاشته یا به عنوان دیگر انسان برعکس حیوان توانایی و کشش درک و یاد گرفتن رو داره من دارم با تو خان میگم شما خود به خود تحلیل میکنین یه چیزایی بنویسید تو این اسنباد میثید درسته یک حیونی رو بیارید اینجا نماز بکن رکوع بکنه چبروت سکرار بکنه میشه این عوض بشه نمیشه چرا چون قوت و اراده, با اراده با ای ذاتی نداره که من عوضش بکنم. یک اراده و یک قوت به یک فترتی نداره که من فترت توحیدی و فهمی رو نداره که من بخوام بهش مورد خطب قرار بدم. لیکن انسان این قدرت بتونی بتونی و توانایی رو خودم در فترت ای ذاتش گذاشته که بتونه بفهمه. بتونه محلحتش رو اتخاب بکنه. و همه یه وند رو پول مرسالی خود افتیم. همونطورتی کمی قبول كثي اذبل خوشش نمياد مثلا اون صحابي مياد الان معادله عقلي وليك ما فهم درازنديش گفته بشه اين وجه مشتركه حتى کافرشان بغيريدو صحابي مياد ميگه الله من ميخوام الله چيش نه درست ني فو نه لو امك قال لو ما هذه قال ان خود ذرم که اثر نمیکنه که عادت حبذ ذلك لخاله حالا حالا ولدی هستی حبون ذلك لخاله مردونه برای خالهاش دوست داره حاضر مطمئن شده و نیاز داره نمیشه نمیشه حاضر کسی انسان عاقل در صدری که مادرش ببینه کسی دیگه باشه ذرم نمیکنه کسی یعنی انسان مصلحتش رو و میبینه که چیز درداره درد. یک انسان طبیعی یعنی یک دختری که مثلا بالغ میشه یک چیزی در فطرت ذاتش خدا میگذاره که دوست نداره مثلا به فرد کسی صورتش رو گیره یک گوشیگیری بهش دست میده و فلا میشه هر انسانی به طبیعت حالش دوست نداره رخ تو بره نیده بشه مگر این که فطرت ها عوض بشن ما را بکشن هندوز را بکشن نمیاد لغ بشه ولی یه باستشون عادی. چرا فقط برای یهوج عادی؟ برای دیگر انسان ها عادی نیست. تأییر برچه مثالی فعبواهو یوحوه داره. این پدر است و مادر است که یادش دادن لغ بشه. اگر نه انسان نمیخواد لغ بشه. هندوس و مورد پرست و هرچی که حتی هست و مشرکه ها مد بیپرسته هندوس. هندوسه. ولی لغ نمیشه تر خوب اگه من میگم گفتم فترات عوض بشه به خاطر زنا و به خاطر فرما در خیابون نمیاد که لوگ چه ماده چه زنش این عدل الهی عدل الهی حس انسان اینکه میصن احساس داشته باشه احساس انسان خیلی نکند ما در در جماعت امروز نگاه قبل از این چند دههی قصر حاضر. جامعی مجتمعی داشتیم که بدون دین و تدعیون و دیانت باشه بدون عبادت و بدون خدافرستی باشه. آیا بودن؟ نیست نه نبودن. الان بله یه چند کمونیست آمدن و سعی کردن که این مفروب رو به مردم برستن ولیش برشکست شدن برشکست کردن. چون انسان به طبع غریزی خودش اینو میخوام بگم میخواد به یک بزرگی به میخواد نقص جبران بکنه میخواد با یکی در یکی دردازل بکنه یکی که منفعت بهش برسنه چون انسان ها منفعتش رو نسبیه منفعتی میخواد که دست کسی بهش نمیرسه مگر آرده انسان خود به خود به یک نیروی متکاملی به اعتقاد داره خدیون مردم هم واضشه دو اسلام همچنان داره گفتشش بدم میکنه کنه یک از دوستان ما بود فلندی عبدالله استش بود ازش سوال کردم تو چرا مسلمان شدی گفت که با تو چرخه می رفتم هیپا می زدم یون خوردم به زمین افتادم بلند شدم گفتم چرا افتادم کی مرا انداخت گفت همین کی مرا انداخت چطور افتادم همین جوری تو افتادم. حد یه یک قدرتی بالا قدرت ها. که سبب شد من بیفتم اگر نه من نمی افتادم. حریف هم. بارم دوچرخ رانیه. همین بود از دوچرخ افتادن سبب شد که چی؟ مسلمان بشه. اینو من میخوام بگم. ساولاتی در نفس انسان سبب میشه که یک فلسفهی بساز از همون عرصی و سقراتش بگیر که دنبال و گشت تساؤلاتی هست، سوال‌هایی هست که حساب می‌کنه خودش من چگونه وجودم؟ پدر مادر پدر و مادرم کجا وجود داشت؟ خب پدر مادری داشتن تا آخرش اونها از کجا آمدند تا آخر از خدا این به خدا رسیدن این تساؤلاتی که ایجاد میشه کی میدونه جوابش بده؟ غیر از خدا هیچ کس نمیتونه جواب بده چون خودش فقط مراه فریده خب این تساؤلات از کجا پیش اومد؟ کسی به یاد کسی به گفت معلمی داشتی؟ این شخص که دوباره سوال دوچرخی بوده هی میروند افتاد. کسی بهش یاد داد که باید از نفس خود سآل بکنی که تو ترا آفرید که از کجا آمدیم و چطور افتادی؟ یا این که یک نفس یک چیزی در در دلش و در قلبش خدافن نهاده و گذاشته چکی درشی که یک چیزی در ذاتش خدافن گذاشته که میخواد این مشکل رو برطرف میکنه مشکل رو حل بکنه. این احساس انسان هاست. و روز به روز مسلمان ها زیاد میشن چرا بودن مسلمان میشن چرا اندونیزی به اتمالش مسلمان میشه؟ چرا شهر اسلام را میبذیرن بگردی میتنید به تاریخ تجارت وقتی که صدق اسلام را میبینن وقتی که میبینن نگاه بکنید همه بحث عقلیش برگردید و ربت شده بحث حسیش اندونیزی مالزی نه جنگی شده و نه جهادی مسلمان ها با جهاد نرمتن اونجا میلیون مطوم فقط بزرگذان کشور اسلام و اننگلیزی در م انگلیزی وجود دارد از دوی پنج میدون دوی مطند جنگ شده جهها س حبه رفتن نه تجاری از من برش تا رفتن به تجارت دیدن که این تجار صادقن مخلصن دروغ نمیدن تونستن چی؟ خیریت رو ترجیح بدن برش اون چیزی که شر رسونه و بذ را بشونن از دروغیی و آدم کشتن و آدم و فلان و فلان هر جز دانده در دقیق اسلام دروغ نه می کنه قیبت نه می کنه اسلام خیرخاه خیرخاهی اسلام میکنه انسان تشخیص می کشتن بده دروغ گفتن بده خب هیتلر اینچینین حرفایی می زنه یا نمی دانم فیلان و فیلان ارسو اینچینین حرفایی می زنه هیچ چیزی جای شر نمی آد اینچینین مفلحت را این شعور هایی را به انسان بده این خدابنده که ا تشخیص ها و این را در نهاد ما گذاشته در درون ما گذاشته تا این که ما تشخیص بید ولی عرصتی چیلین کاری که هست؟ سقرات عرصت فیسا غوره فلسفه نتونسته که این مسالح را به مردم برسنه و این مشکلات را پاسخ بده تنها کسی که من جوابش بده شرع خدامنده و اون فطرتی که انسان رو میکشنه به طرف چی؟ به طرف خدامنده چه کسانی که ما در نگاه کنید کسانی که در اومتهای پیشیم بودن و اقرار به وجود خدا داشتن براق ابن نوفر براق ابن نوفر پیانبری داشت قبل مبسن رسول الله صلی اللہ علیه و سر رضی اللہ عنه خیر دین مسیحیت کامل بود انجیل بود تعرات بود همه تحریف شده بود چرا دین ابراهیم را تمامي دینه انتخاب کرد اینا دوشی چی چیز؟ غیر براتم غیره در رقم نفر زیادن چی چیز سبب شد؟ چه ترکش نخواست که به شر به پیوند به خاطر چی؟ به خاطر اینکه احساس کرد که, که مسیحیت بر باطلن چون گفتن عیسی فرزند خداست یهودا هم گفتن قضیه فرزند خداست اینا هم منحرفن اینا هم مشرک شدن اتخذوا قبور انبیائهم مسجد شدند اینا دین خدا رو رحم می‌فرستن من با فراتش خدا بر بگردم و میاد محمد را من صلی اللہ حرزم تعیید می کنه فس برا فترت هست یا نیست؟ فترت هست فنمیشه انکار کرد قرآن سنت عقل و اینم احباست خودم بیاد بگید اهل سنت عقل ندارند یا عقلشون به کار نمیبرند یا عقلشون مدره ما هم از عقل این عقل من هم خطرت ما یعنی این چیزی که خداون در نهاد ما بذاشته همون طور اون شخصی بزنید مفاره این چیزی سآلات بیش بیش میاد به خدا برمیگرده ما هم این چیزی حوادثی که در جلوی ما روح میده ما رو به همین میکرده که ما باید خدا شنافت باشیم خب چی شده علت چیه ها اومدن az mu'tazila khususan va jahmiye fatrat ro inkar bokonan va ravaf che che sabab shode ke fatrat ro inkar bokonan avalan buzuk sarin dalil esun chalo ba'd tahlil es mikonim ine ke khoda man miferman dar quran wallahu وَجَعَلَ لكم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النحل صفحه 8 اي صفحه 8 سوره النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم فضل عن شو مرات شكم هاي مدرانتون بيرون ورد لا تعلمون شي عن وجه شاه دنج لا تعلمون اش عن شي نميلونك قد كافي شما الان فقط بخاطري ان مشكله بتقفشنينج. لا تعلمون شي ارد قلتهم كشي لازمش اینی که حساب فطرته نداشته باشه آیه فطرت یعنی علم آیه فطرت یعنی علم چی این مسائل خاص دیگه جواب کوتاش بده فطرت چی از دیگه هست علم چی از دیگه هست خلاص بعدن جواب وارد من دوم من بعض از اهل سنت اگر منجر به نفی فطرت شدن علتش قدری اومدن به این حادثه تلال کردن که کفر و گناه که از انسان صادر میشه به اراده الله نیست کفر همچنین گناه چرا چون رسول الله فرمودن که چی فابوا و یحبدان پدر مادرش رو یهودی میکنند خدا من انسان ها روی اسلام خلقت کرده لیکن انسان ها هستن که کفر پذیرفتن نه اینکه خدا من کفر برای انسان پذیرفت جوابشون خیلی همراحته روزی اشخاصی میان نزد امام مالک این امام لالکایی لا در اعتقاد رسول اهل سننه نکن میکنه این امام مالک اشخاصی میان در نزدش میان سوال میکنه امام مالک این اهل الاهواء يحتجون علینا بهذا الحديث قلم اولو در یوداله تقنا و پر این بحث قدیمی ها اینو میخوام بگم این بحث خیلی قدیمی ها این کارو فطرت چون همین فطرت خیلی بشرات را حد گفتن ای ما مالک اهل احوا اهل بدع یعنی هر کسی این رو این حدیثا نقد بکنه بر گویا بر اهل احوا اهل بدع است اهل بدع است که حدیث رو با عقل نقد کمانی و شکیست ولی عقل ما عقل نظری و ترجیحی است کمان راجح است که یقین داریم و بیریم که حس و عقل ما هم خارج از این ادلله صحیح و صریح نیست امام مالک بهش میگه که اهل احوا به این حدیث احتجاج میکنن امام مالک جمی پاسف میدن گفتن احتج علیهم به آخره و به آخرش بشت جنسه بکن قالو گفتن رهاب قالو ارايت من يموت وهو صغير و رسول الله اي شف... ميبنيون شخصي كي مثلا كوچيك فوت بشه آلا فردن مؤمن باشه فردن گافر باشه رسول الله جواب دادن حالا اين مؤمن اين بهشتي يا جهنمي خب در آخر انسان خلقت رسول الله فرمودن الله اعلم بمكان عملهم ما به مکن و عاملی. الله اعلم مکان مکن و عاملیم. خداوند آداه از آن چی که بهش عمل خواهند کرد. یا بعد از این که خواهند اومد چطور عمل میکنن خداوند آداه. خداوند آگاهه علم قبل و علم بعد رو هم داره. الان با حسن شرح به طور مفصل خواهد اومد. الان این یک از ازله بود. بعضی ها هم اشکال, اشکال آخری شوند. اشتباهاتی هست که در ذهنشون نیجا شده. گفتن اگر قراره فرزند کافری روی فطرت باشه. پس باید شما روی نماز جنازه هم بخونید. روی نماز جنازه هم بخونید. نظارید هم پدر مادرش رو تربیت بکنن و باید از در مادرش هم باید بیگیریدش. مول مول و ابن مسجد بکشنید فتس جلسه همه دیگه مال خودتن مال مسلمانات مال کافر کنید اصل اشکال رو از گرفته شده اصل اشکال و اشتباه اینه که احکام کفر دنیاوی متعلق به احکام کفر را نسبت به آخرت دادن یعنی قاتی کردن بین احکام کفر دنیاوی و آخرت احکام کفر دنیاوی و احکام کفر اخروی ما شکی نداریم که پرزندان مشرکی در دنیا احکام خاص خودشون دارن پدر مادر داره پدر مادر باید تربیدش میکنی پدر مادر باید تفراتش باید بگیره وزیفه پرورش و پرست هر از داری اون فرزند به هده کیه به هده پدر مادر من خرصه شدم لیکن بختم الان خیلی هم نمونده لیکن الان سعی بیکنیم که چون این مبحث خیلی نیاز به تمرکزم داره سعی بیکنیم الان اونطوری که هست این مطلب درست برسیدی که درست بگیرید تو مطلب خیلی سنگینه این مطلب یک کمیه خیلی هم سنگین نگاه بکنید در بحث کفار بحث این احکامی ای که ما گفتیم در دنیا احکامی که یک فرزنده مشتگی که روی پترس اسلام خلق شده و برگردن پدر و مادرشه دلیلی بر این نیست که اونها روی فطرت خلقه نشدن. چرا؟ چون ما از حال عاقبت عشقات با خبر نیدیم. چه منفی، چه مصبتش؟ دو سم مثال بهتون میدنم. جنگ اگه که الان بشه، ما وظیفه مونه که تک تک سوال بگه شما مسلمانید شما مسلمانید یا نه وظیفه مونه سوال سوال بکنید مهم اینه که ارتش جلوی ما ایستادن ما باید مقاومت بکنیم درسته شاید مسلمونی هم در دنیا کشته بشه خب اگر در آخرت شکم دنیا رو به خودش می‌گیره خیر شو خداشناس اونجا بهشتی در دنیا ما وظیفه دیگه در مقابلش داریم مثل یک شخصی در که ما دروی ما هجوم ما تمام وانه احکام دنیاوی غیر از احکام مقرمی است نباید خاطی بکن همونطور برعکسش منافقی که هست کافر یا نه منافقین در درک از من هم نارند پایین در این جهنم رو دارند لیکن در این دنیا نمادونشون خونده میشه؟ بله کشته میشه نه چرا حکم کفرشون انجام انجام داده نشد؟ چرا؟ چون در احکام دنیا ما وظیفه دیگه داریم در احکام آخرت دیگه وظیفه دیگری هست شده دست خود و خدا منده بله میشه بایدونم مثال دارم این مثال ها زیاده پس گفته رسول الله صلی اللہ علیه وسلم که هر مولودی روی فترت خلقت میشه مقصدش حقیقتیست که روی آن خلقت شده. و بر اساس آن ثبابی خواهندید و عقابی خواهندید. پذیرفتن ثباب خواهندید. نپذیرفتن عقابی خواهندید. بر اساس اون فترت شد. و آنم در صورتی که معارضی نیومده باشه که چی؟ آنها رو گمراه بکنه. حالا این شاید مسائل دیگری خواهدی من مصادیقی <تصفيق> که علمای اهل سنت را در تقابل این احادیث در خود فطرت، كل مولود علی الفطره، مصادیقی که علما در آن چه مفاهیمی داشتن و کدام مفهوم درسته؟ کی برای حرفی حدیث شد؟ سبحانك اللهم و حمدك سبحانك اللهم و